این داستان شمشیر در سنگ صبح روز کریسمس معلوم نبود سندان آهنگری از کجا وسط حیات کلیسای بزرگ پیدا شده هیچکس کس سندان چجوری به اونجا اومده سندان روی یه پایی سنگی بزرگ قرار داشت و یه شمشیر هم وسط اون فرو رفته بود به سرعت این خبر همه جا پیچید. میگن که هر کس اگه بتونه این شمشیر رو از توی سندان بیرون بکشه پادشاه انگلیسی ها میشه. خیلی از اشرافزاده های مغرور پا پیش گذاشتن. سعی کردن شمشیر رو از اون سندان اسرارآمیز بیرون بکشن. اما هرچی زور زدن و عرق ریختن و نعره کشیدن ناامید و درمونده پاپس کشیدن شمشیر از جاش تکون نمیخورد حدود یه هفته از این ماجرا گذشت زمان برگزاری جشن مبارزه با نیزه پشت اسب که هر سال روز عید برگزار میشد فرا رسیده بود هنوز سندان روی یک پایه سنگی بزرگ وسط حیات کلیسا قرار داشت نصف تیقه شمشیر هم توی اون فرو رفته بود. هر سال جنگ و ورای دلیری برای شرکت توی جشن مبارزه با نیزه بر پشت اسب از همه جای کشور به پای تخ می تا شجاعت خودشون رو به رخ دیگران بکشن. توی اون جشن، اون سال آلی جناب کی پسر آلی جناب آکتور، قرار بود برای اولین بار در این مبارزه شرکت کنه. اونها به دستور پدرشون آرتور برادر کوچکترشون رو هم همراه خودشون اوورده بودن. آکتور و پسرهاش توی دورترین نقطه کشور زندگی میکردن. اونجا اونقدر از پایتخت دور بود که حتی خبر شمشیر فرو رفته توی سندان به اونها نرسیده بود. سه روز پشت اسباشون تاختند سرانجام های بلند کلیسای بزرگ و پرچمهای رنگ و رنگی که به مناسبت مراسم بازی نیزه آویخته شده بود توی باد تکون میخورد و از دور دیدن همون موقع اتفاق وحشتناکی افتاد حالی جناب کی دستش رو به کمرش برد تا شمشیر مرزه اعتمادش رو مرتب کنه که دید خبری از شمشیر نیست نفسش به سختی بالا می اومد گفت آه شمشیرم نیست رنگ آرتور پرید چون اون نوچهی کی بود هر جنگجو نوچهای داشت که وارسی زره و اصله های جنگجو کار اون بود با عصبانیت گفت حتما اون رو توی مهمونی خونه ای که دیشب توش خوابیده بودیم جا گذاشتیم. نگران نباش که من همین الان برمیگردم و پیداش میکنم. قبل از اینکه کسی بتونه حرفی بزنه آرتور دهانه اسبش رو کشید و چهار نل از راهی که اومده بود برگشت. موضوع اونقدر جدی بود که حتی یه لحظه هم رو نباید از دست می دادن. وقتی آرتور وارد مهمون خونه شد، هیچ نشونی از شمشیر آلی جناب کی پیدا نکرد. آرتور دوباره به تاخت به طرف شهر برگشت و تمام راه توی این فکر بود که حالا چجوری خبر رو به برادرش بده. نزدیک میدون نیز بازی آرتور، چارنل در حال عبور از کنار حیات کلیسای بزرگ بود که چشمش به شمشیر افتاد که در سندان جادویی فرو رفته بود. آرتور دهونه اسب خستش رو کشید و دور و برش رو نگاه کرد. همه برای تماشای مراسم بازی رفته بودند. آرتور با خودش فکر کرد اگه اون شمشیر رو برای چند ساعت قرض بگیره، احتمالاً مشکلی پیش نمیاد بنابراین با صدایی بلند گفت قول میدم خیلی زود اون رو برگردونم آرتور با شتاب از اسبش روی زمین پوشیده از برف پرید از پایه سنگی زیر سندان بالا رفت دستهی شمشیر رو چسبید و اون رو کشید شمشیر مثل رد شدن سوزن از میون تکهای پارچه خیلی راحت از سندان بیرون اومد وقتی نگاه آرتور به تیغه آب دیده و دسته جواهر نشون شمشیر افتاد گفت خدای من این بهترین شمشیریه که تا حالا دیدم بعد یادش اومد که هر لحظه ممکنه مسابقه شروع بشه دوباره به طرف اسبش دوید روی زین پرید و درست وقتی که شیپور آغاز مسابقه رو به صدا در به تاخت وارد میدون مسابقه شد. آلی جناب کی مبهوت و حیرت زده به شمشیر بیمانندی نگاه کرد که برادرش به دست اون داد. او و پدرش همون چند دقیقه پیش موضوع سندان اسرارامیز رو از جنگ دیگه شرکت کننده توی مسابقه شنیده بودن. برای همین کی فوری متوجه شد اون شمشیر احتمالاً همون شمشیره عجیبه همونجوری کهش شمشیر رو بالای سرش تکون میداد میون حیاه جمعیت فریاد کشید اینجا رو ببین پدر من باید پادشاه جدید انگلیسی ها بشم علی جناب فوری خودش رو به اون رسوند. نفسدنون به شمشیر گرونی نگاه کرد که در دست کی بود. پرسید این رو از کجا وردی؟ کی که لبول و چش آویزون شده بود و منمن کنان جواب داد گفت اینو آرتور برام آورده آلی جناباکتور با چهرهی وحشت زده رو به آرتور کرد و پرسید کیین رو از سنگ بیرون کشید و به تو داد؟ جواب داد هیچ کس حالا چند نفر از مردم دور اونها رو گرفته بودند. با نگاهی مات به اونها اشاره می و داد می و فریاد می آرتور که خیلی ناراحت شده بود گفت خودم اون رو از توی سنگ بیرون کشیدم. میخواستم بعد از مبارزه اون رو سر جاش برگردونم باور کنی. آلی جناب آکتور آرتور رو به طرف حیات کلیسای بزرگ برد. جمعیت زیادی از مردم هم که سر و پاشور و هیجان بودن اومده بودن. آلی جناب آکتور به آرتور گفت شمشیر رو سر جاش بذار پسرم. آرتور هم شونه ای بالا انداخت و جواب داد. باشه. بعد از پایی سنگی بالا رفت و شمشیر رو دوباره توی سندان فرو کرد. اول خود آلی جنابک در سعی کرد اون رو بیرون بکشه. بعد آلی کی با تمام توانش کشید تا اون رو از توی سندان بیرون بیاره. اما، شمشیر از سر جاش تکون نمیخورد آقابت آلی جناباکتور با صدایی لرزون گفت حالا به ما نشون بده چطوری این کاری کردی پسرم وقتی آرتور از پایی سنگی زیر سندان بالا میرفت نفس کسی در نمی وقتی آرتور بدون هیچ زحمتی شمشیر رو بیرون کشید صدای هل هل و فریاد و خوشحالی مردم چنان به هوا برخاست که میشد اون رو توی تمام شهر رو از بیرون شهر شنید. این ماجرای پسر جوونی به نام آرتور بود که اگرچه حتی جنگ جو هم نبود اما تاجه پادشاهی انگلیسی ها رو به سر گذاشت و سرانجام به بزرگترین قهرمانی تبدیل شد که سرزمین های سلتیک تا اون زمان به خود می دید سفر به دنیای پر رمز و راز افسانه ها طبیعت های زیبا و نایاب رودخانه ها و برکه های جادوی قصر باشکوه و مهمانی های بزرگ شاهانه قصه های از سفر های دور و دراز با پای پیاده سفر شاهزاده ها و شاهان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 تگ ساین مهران دوستی